ای روی ماه منظر تو نو بهار خوش خال و خط تو مرکز حسن و مدار خوش در چشم پرخمار تو پنهان فسون ستر در زلف بی قرار تو پیدا قرار وست ماهی نتافتم چون تو از برج نیکویی سروی خاص چون قدت از جویبار خوش خرم شد از ملاحت تو عهد دلبری فرخ شد از لطافت تو روزگار حوز از دام زلف و دانه خال تو در جهان یک مرغ دل نمان نگشته شگار حوز دائم به لطف داویه تب از میان جان می به ناز تو را در کنار حوز گرد لبت به نفش از آن تازه و است. تا به حیات می خورد از جوی باره وز حافظ تمع برید که بیند نظیر تو دیار نیست جز روختن در دیاره وز